وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبِّ عن هذا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أن عبد الْأَصْنَانِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شهادتین کلمه شهادتین رو شرح دادیم اشهد ان لا اله الا الله رو شرح دادیم معناش چیه و پیامبران چه منظوری داشتن از اشهد ان لا اله الا الله که دعوت دادن ماها رو سوی این کلمه و همچنین اشهد ان محمد رسول الله که لازمش ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ره رو راهش بودن رو داشتیم و بعد از اون ایمان به قرآن داشتیم، کتاب خداوند، کتابی که توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما ابلاغی واضح و شفاف شده. حال، مایی که باید ایمان بیاریم به خداوند یکتا و ایمان بیاریم به اون پیغمبری که فرستاده و اون کتابی که گذاشته. چرا ما باید ایمان داشته باشیم؟ انسان، انسان مؤمن نباید در نفس خودش احساس بکنه که یک مشقی شده براش این عبادتش این طاعتش این پایبندی به دین خداوند نباید هیچ وقت انسان احساس بکنه که تکلیف تکلیفی شده اون تکلیفی که سخت برش اون تکلیفی که از توانش بر نمیاد ما باید اعتقاد داشته باشیم خداوندی که این تکلیفات را بر ما گذاشته این ها را بر ما تشجیع کرده در حق ما رحیم بوده مسلحت ما را خواسته رحم داشته, لطف داشته. این نبوده که خداوند از صفت قهر خودش و جبروت خودش را بر ما تحمیل بکنه و بیاد ما را به زور وادار بکنه که او را بپرستیم. خیر خداوند در ازای این که ما او را بپرستیم در ازای اون خداوند درهای رحمت را بسیم و باز میکنه. اگر بنده خوبی شدیم، بنده صالحی شدیم، دعایمون حداقل سجابت میشه. حداقل به دادمون میرسه. و اون نیازی که داریم نیازهامون را برآورده میکنه. اون بنده ی نیکی میشیم که هر جا باشیم خدا به دادمون میرسه. بله خداوند را باید بپرسیم چون خداوند معبود ما هست و ما را خلقت کرده برای اینکه حق عبودیتش را به جا بیاریم حق پرستش را به جا بیارییم و برای اینکه ما دلمون محکم بشه، قوی بشه، به خاطر اینکه هیچ نوع شک و تردیدی در پرستشمون ایجاد نشه برای ما نشون داده از صفات خودش، از نیکیهای خودش برامون نشون داده که هیچ وقت دچار شک و تردید نشیم در عبادتمون خداوند بهمون در سوره فاتحهی که در هر نماز می خونیم در این سوره برامون از دو صفت خودش گفته یکی در همون بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز میکنیم به اسم خداوند با نام او شروع میکنیم آن کسی که الله هست و الرحمن الرحیم هست سپس بعد از اینکه که شروع شد باز بار دیگر این قضیه تکرار میشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم شکر و سپاس خداوند را به جا میاریم از ته دل میگیم نه اینکه فقط بر سر زبون باشه نه واقعا ما میگیم الحمدلله رب العالمین چرا ما میگیم الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین را میگیم به خاطر اینکه خداوند الرحمن الرحیم از صفات رحمانیتش مهربانیش اینه که خداوند پیغمبری را برامون فرستاد که ما هدایت بشیم خدا را بشناسیم رحمت خدا در حق ما بوده که خداشناس بشیم پی ببریم به وجود خدامون سر به بندگی خداوندمون در بیاریم این رحمت خداوند نسبت مؤمنین هرچند که خداوند در کنار اینکه رحمان هست برای مؤمنین برای کسانی که دعوت پیامبران را پذیرفتند رحیم هم هست مهربان هم هست برای دیگر مخلوقات خداوند بخشنده و مهربانه خداوند از صفت رحمتش که همه جا فرا،, فرا،, فرا،, فرا گرفته که خداوند میگید رحمت من همه وسعت وسط کلشی همه را فرا گرفته از رحمتش ما در خودمون در بدن خودمون میبینیم و در مخلوقات دیگر در دوربر خودمون میبینیم هرچنگه گفتم من ما رحمان صفت, صفت رحمان خداوند که خاص مومنین هست ما میبینیم در خودمون که خداوند بهمون توفیق داد که ما مسلمان و مؤمن بشیم و خداشناس بشیم و, و همینطور که ما شکر سپاسگزار خداوندیم از اینکه ما مؤمن شدیم و به درگاهش بی و بندگی خودمون را ثابت بکنیم شکر خدا هستیم که این بدن رو هم در اختیار ما گذاشت که بتونیم با این بدن رکوع بکنیم با این بدن سجده بکنیم با این بدن شیر مادر را بمکیم با این بدن خداوند در اختیار مادرمون شیر قرار بده که ما از اون شیر تغذیه بشیم اون بچه‌ای که دندان نداره کجا از کجا تغذیه بشه چه چی چیزی بخوره که به دردش بخوره خداوند غذای کامل را در شیر مادر گذاشت که اون بچه بنوشه اون بچه بزرگ بشه غذای کامل که هیچ شیری جای این شیر مادر را نمیگیره نه شیر گاو نه شیر شتر نه شیر بز هیچ شیری جای شیر مادر را نمیگیره همه پزشکان میگن خداوند طور شیر مادر را غنی قرار داده طور شیر مادر را قوی قرار داده که هیچ شیری جایگزین شیر مادر نمیشود غیر از این است که خداوند رحم داشته در حق مادر، در حق اون فرزند مهربان بوده. غیر از این است که خداوند، خداوند مهربان مهربانی دا در دل مادر گذاشت تا اینکه نسبت به اون به فرزند مهربان باشه، از خواب خودش بزنه، تحمل بکنه، شب بیدار بشه بچه چرا برداره کنار سینهش بذاره تا اون که اون بچهش از اون شیر بنوشه. غیر از این بوده که خداوند این صفت رحمش را در اون بنده گذاشت که نسبت به فرزندش اون مادر رحیم بشه خیر حاشا و کلا خداوند خداوند حنان و منان خداوند لطیف که صاحب لطف و مهربانی هست این لطف مهربانی را در قلب مادر گذاشت تا نسبت به اون, اون فرزندش مهربان و دلسوز باشه بله مادر دلسوزه دلسوز فرزندش هست کدوم مادر هست که دوست داره فرزندش در آتش جهنم میفته آیا مادری بچهش رو در آتش میاندازه خیر چه چی چیزی سبب میشه که این مادر این چینین کاری رو انجام نده جز اون مهربانی که خداوند از مهربانی خودش از لطف خودش در قلب اون مادر گنجاند و گذاشت بله این محبت را خدا گذاشت تا اینکه بهمون بگه خداوند همانطور همونطور که این مادر دلسوز تو هست مهربان به نسبت تو خداوندم همینطور مهربان و دلسوزه که این دلسوزی رو در قلب مادر گذاشت همونطور که رسول الله صلی الله علیه و به اصحاب میگویند و میفرماین میبینید این مادر آیا این مادر بچهش شو در جهنم میندا در آتش میندازه گفتن خیر فرمودن خداوندم همینطور دوست در بندی و عذاب بنده رو عذاب بده و در جهنم مندازه. بله خداوند ما مهربان است. خداوندمون که میگوید ما او را بپرسید دلسوز ما خودمون هست. تا اینکه گمراه نشیم، تابع ابلیس نشیم، تا اینکه مستقیم وارد بهش بشیم، عذاب نکشیم در مقابل سرپیشی از دستوراتش تا اینکه تابع هوا و هواستی من تابع ابلیس نشیم. دلسوز ما بوده خداوند. اگر پیامبری را فرستاده برای اینکه بهمون یاد بده چطور نماز بخونیم. به خاطر این بوده که دل ما بوده تا اینکه که سرب عبودیت ابلیس و شیطان در ندیم تا این که مرتکب زنا نشیم،, دوزی نشیم، پای نشیم، پایبند به دین خدا بشیم اگر قرار بود، اگر قرار میشد که بندگان هر کاری که دلشون میخواست انجام بدن، چی میشد در جامعه؟ بندگان چه حال روزی داشتند؟ اگر خدا پیامبران را نمی‌فرستاد که بگوید به مردم دزدی حرامه، دیگه کسی به کسی دیگر رحم میکرد لطف میکرد این مال اینو میذوزید، فلانی مال دیگری رو میذوزید، ولی خداوند ما، همینطوری مارا ما را نگذاش رها نکرد تا اینکه ما بخواهیم به همدیگر ظلم بکنیم خداوند زور را بر خودش و بر ماها حرام کرده. این حرمت و ظلم علی نفسی خداوند میگوید من ظلم رو بر خودم حرام کردم. چنانچه در حدیث داریم خداوند زور را بر خودش حرام کرده و زور را بین بندگانم حرام کرده. چرا چون منافات داره با رحم و مهربانی خداوند الله الرحمن الرحیم هست چون لطف داشته در حق ما چون رحم داشته در حق ما ها که این چنین بنده نیکی باشیم تا اینکه با همدیگه درگیر نشیم ما باید او را بپرسیم و سر به اطاعتش در بیاریم تا اینکه ب... تا این که گمراه نشیم و تابع ابلیس نشیم بله خداوند الرحمن و الرحیم هست رحم... رحمتش نه تنها به انسان هست بلکه نسبت اون حیوانم هست صبح که خورشید میخواهد بیرون بزند اون گنجشک اون مادر اون گنجشکی که روی شاخه های درخت لانه خودش را برای فرزندانش گذاشته و خداوندم بهش این علم رو یاد داده که چگونه لانه را بساسه اون خداوند علیم و حکیم که اون پرنده را رها نکرد همینطوری و علم خوردن آشامیدن نگذاشت که اون رو بقول معروف اون پرنده ندونه چگونه بیاشه و بخوره و از کجا بنوشه و بخوره و چگونه فرزندش رو تربیت بکنه خداوند همینطوری رهاش نکرد از رحم و لطف خداوند این بود که به اون مادر به اون گنجش که مادر یاد بده لانه ای را سر درخت بزنه تخمش اونجا بذاره روی اون تخمش بشینه خداوند اینجوری رحم رو در حق اون نسل از پرندگان گذاشت تا اینکه نسلش ادامه بیابه تا اینکه زیر رحمت الهی بمونن و پایدار بمونن و غیر از این خداوند غیر از اینکه رحم به حالشون کرد تا اینکه پرورش بیا و بزرگ شدن بزرگ بشن خداوند یادشون داد که چگونه دنبال روزی خودشون برن صبح که میشه پرنده اون گنجش از لانه خودش بلند میشه میره دنبال آب میره دنبال غذا خداوند غذا رو براش مهیا کرده از اون, اون گندم و از اون دانه هایی که روی زمین افتاده بر میداره و میاد در دهان فرزندش قرار میده تا اینکه اون فرزندش اون بچه گنجش بزرگ بشه و گنجش دیگر بشه سپس همینطور نسل اینها ادامه بیا به تا اینکه این نسل ادامه بیا به و نسل انسانیتم همینطور یعنی خداوند غیر از اینکه لطف در حق اون پرندگان کرده که پرندگان بتونن دنبال رس روزیشون بشن و بزرگ بشن اینها این مخلوقات را هم در, در کنار اینکه رزق روزی اونها را فراهم کرده رزق روزی ما بندگانی که خلقت کرده برای عبودیتش رزق روزی ما را هم سه وسط آنها فراهم کرده آنها از درختان میخورن و سپس ما از اون گنجشکگاه و از اون مرغ ها و از اون حیوانات میخوریم. بله خداون همه اینها را در اختیار ما قرار داده تو این که ما رحمت پی ببریم به لطفش پی ببریم تا اینکه دیگه خیر از او کسی دیگه رو صدا نزنیم بله خدا را با کسی دیگه عوض نکنیم. خداوندمون رحمانه خداوندمون رحیمه همه جا صدای ما رو میشنبه اون کسی که صدا را نمیشنوه اون کسی که نمیبینه دنبال بندگانش نیست اون مستحق عبودیت نیست مستحق پرستش نیست به خاطر همین ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که اومد که به درجه خله رسید نهایت محبت نزد خداوند رسید به خاطر اون عبودیت و پرستش و بندگیش که به خداوند ثابت کرد ابراهیم علیه السلام اومد در سازنش به قومش چی گفت اتقال اتقال لابه یا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء چرا ای با... پدر کسی را میپرسی که نمیشنوه و نمیبینه و به دردتم نمیخوره اون بود را چرا میپرسی؟ مگر بود میبینه؟ مگر میشنوه چه رحمی چه لطفی نسبت به تو داره؟ کجا به دادت میرسه توی کشتی به دادت میرسه یا رزق روزی اون بود میرسونه یا اون مردهایی که زیر خاک خوابیده. اون مردایی که زیر خاک روزی ما را میرسونه؟ لطف به حق ما داره، رحم به حال ما داره یا از علم غیب با که ما به چی نیاز هست نیاز بله خداوند الرحمن الرحیمه و لازمه صفت رحمتش اینه که خداوند به داد بندگانش برسه و هر کجا که باشن صدای اونها را بشنوه و دعای اونها را استجابت بکنه و جویای حال بندگانش باشه همه به یکسان نه تنها انسان حتی اون مورچه که ما گفتیم و بارها تکرار کردیم تو همین درسا ای ریز سیاه رنگ در شب تاریک در درگه تاریک روی صخره سیاه خدا او را میبیند و دعاش سجابت میکنه بله اون کسی که نمیبیند اون کسی که نمیشنود اون کسی که رحم ندارد و اون کسی که با بندگانش صحبت نمیکنه که اونها را نجات بده با اونها حرف نمیزنه با اونها, اونها را هدایت نمیکنه اون مصحق پرستش نیست همونطور که موسی علیه السلام خداوند چنین خطاب بهش میکنه که به قومش میگوید الا میروا انه لا یکلمهم ولا یهديهم سبیلا وقتی که اومدن گوساله رو پرستیدن خطاب به قومش گفت میگه نمیبینن خداوند میگوید مگر نمیبینن که اون گوساله باهاشون حرف نمیزنه اون کسی که حرف نمیزنه پیامبری را نمیفرسته که بشریت را هدایت بدن مستحق پرستش نیستن خداوند میخواهد بگوید من از رحمانیت و مهربانیم نسبت به شما ای بندگان این است که من برای شما پیامبرانی فرستادم که به شما بگویند منم که هر جا باشید صدای شما را میشنوم منم که هر جا که شما باشید شما را میبینم منم که هر جا که شما باشید دلسوز شما هستم و از باب دلسوزی باهاتون حرف زدم و سخن خودم را توسط پیامبران به شما گفتم وح کردم پیانبر خدا اومد بهتون گفت که این راه نجاته این راه سعادتمندیه این راهو تیب بکنید. بله خداوند صحبت کرده، سخن گفته با جبرئیل تا اینکه بیاد در رسول الله بگه و یا اینکه مستقیما با خود رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفته، یا وعده کرده مستقیما برش تا اینکه راه هدایت را بهمون نشون بده. این از رحم خداوند و از لطف خداوند نسبت به ما بندگان است. ما بندگان باید قدر دین خودمون، قدر بندگی خودمون، قدر پرستشمون، قدر رکوع سجدهمون سجدمون که خداوند خاصه ما براش انجام بدیم، باید بدونیم و چنان باشیم. که, خدا و... که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبودیت و پرستشش بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت احساس تکلیف، احساس مشق نمیکردن در مقابل بندگیش اثبات بندگیش نفتی به خدا بند چون میدونه این بندگی لطف خداوند در حقش هست میگف به بلال ارح نبیها یا بلال بلال راحت من کن کی کی میخواست رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز و ایسه شبها می ایساد اسباب شکر و سپاس به خداوند می ایصاد فهاش می کرد و به میگفت افلا اکون عبد شکورا و آیشه وقتی که گفت یا رسوله تو که خداوند گناه خدا گناهان ما قبل ما بخشیده چرا این قطعه عذاب میدی به درگاه الهی؟ رسول الله صلی اللہ علیه و فرمودن افلا اکون عبد شکورا آیا بنده شاکر و سفاسگزار خدا نباشم؟ بله عبودیت لذت داره اظهار بندگی هست اظهار محبته شکر و سپاس از خداوند بنسبت اون رحمی که و لطفی که در حق ما داشته واخر دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آل محمد